بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب عليه على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا من اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى ان ارسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا إلى فرعون رسولا فاتى طرعون الرسول فاخذناه أخذا وبيلا. اهلا وبلا اهل رحمه الله بس دবারে تكرار مكانه بخاطر انك مطلب اولتت اونجا مطلب عام بود 4 تا مطلب اینکه اول باید علم داشته باشیم، دنبال علم باشیم، بعد دنبال عمل و بعد تعود دادن و بعدم ثبات حمل الان میخواد اون مسئله اول، اون علم را که چه نوع علمی باید باشه میخواد توضیح بده اعلن، بدان، چی را باید بدانیم؟ اینو باید بدانیم که بر هر مسلمانی واجبه سه چیز واجبه اولی چیه؟ اولیش بحث خداوند معرفت خداوند از چه راهی خو... حاصل میشه و درباره خداوند و شناخت خداوند چه اموری ما مکلف به اشاسی ال اول ان الله خلقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا ان خلقنا بحث اثبات خالق بحث اثبات خالق این که ما بدونین خالقی داریم خالق, داری. خالق. پروردگار آفریننده یا اینکه یک امر بدهی باشه برای بشریت، برای ادیب و یا اینکه نباشه. اگر اون آن بدهی بوده، همونطور که در زمان جاهلیت، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، "کلی من ما في السماوات والارض" لیا الله، قبول داشتن الله را. یا اینکه قبول نداشتند. این از این دو حالت خارج نیست. مثلاً در زمان نوح علیه السلام در زمان خیلی از پیامبران خدا الله را به عنوان پروردگار قبول داشتند و پیامبران خدا هم این چیلین خطاب میکردن و قومشون اف الله شک اف الله شک مگر در الله شک، اف الله شک نه شکی در الله نیست چه الله قاطر السماوات والارض کسی که آسامان ها و زمین را فریده اینها در این مسئله خصوصاً در زمان پیامبران نوح ابراهیم قول العظم از رسول مگر بعضی‌ها بعضی از اقوام که مخالفت می‌ورزیدند مثلا بلفر اون ای که ابراهیم علیه السلام اومد دو کاربردگارم خوشیده، فلان عقل قال قال لا احب پس به خیلی از بشریات که فطرت اونها منتکس نشده بود خدا را قبول داشتن چطور این فطرت انسان مدعی این فطرت چی اصلا فترات الله التي فطر الناس عليها چیه؟ جوی دیگه در سوره اعراف خداوند بی بیان این صدات بیان میکنن و اذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم ذریه آدم وقتی خداوند آدم رو خلق کرد این اعتراف رو از اونها گرفت چی بر کی اعتراف گرفت الست بربكم رب پروردگاری بر قالوا بلى اونجا اینو ولی کچی رسول الله صلی الله علیه و سنت چی میفرمایند ما من مولودا الا یولد علی الفتره هر مولود و ان فتاته تو خلق میشه خدا را قبول داره دنبال خدا هست وقتی که در کشتی میخواد خدای مثال میزنه میخواد در سباره. سباره میخواد در کشی سواره روی کشتی سواره میخواد غرق بشه الا من تتون الیه غیر از خدا کسی تو فریاد نمیزنه چرا چون خدا رو خدا در ذات انسان گذاشته ولی کچی فاب الله یهویدانه او یونسرانه او جساله. پدران هستن که نصرانیش میکنن این اصل مسلمانه، چون نگو پیو مسلمانه، مسلمانش میکنن گفت یهودیش میکنن نصرانیش میکنن مجوسیش میکنن کما ما تنتو بهیم مثال رو لقاد بکنید که این معنا رو میرسونه کما ما تنتو جل بهیم، بهیم جمعه. هل ترا فيها من جدعه؟ میخواید ترتر رو بدونی؟ مثل یک حیوان. حیوانی که بدون یه گوشش بریده نیست. سال یعنی از لحاظ خلقه گوش بردی نیست. چشم داره گوش داره الا استثناء اون جنتیکش به هم بخوره مثلا ایدیت اصل خلقت اینطوریه چشم و گوش و بینی و دهن و اینا باید باشه تو مخلوق حل طرفی هم من جدعا اون مجدوی رو حیوانه که گوشش بریده باشه یا دهنش بریده باشه نه نیست انسان هم اینطوریه فطرتش پاک اسلام پدران هم که یهودی میکنن که... پدران هستن که نصرانیش میکنن و یا مجوسیش میکنن. آیات خداوند بر این که پیامبرانم فرستاده شدن برای این که به مردم عمل را بیاموزن زیاده چون ما گفتم مسئله علمی به این که اعتراب داشته باشن به خالق زیاده به خاطر همین خداوند جایی در قرآن می ولقد بعثنا لقد بعدنه فی کل امت رسول الله و اشتره بالطابوت عبادت توشید عملی ما دونو توشید داریم یا توشید علمی هست یا توشید عملی توشید علمی برمیگرده به یک تا قرار دادن خدا من در افعال خودش خود خدا را یک تا بشماریم در خلق در آفرینش، در رز روزی یک تا قرار بدیم در افعال خودش این علم نه علم ما نسبت به خدا الان ماها مشکلی در این قسمت نداریم تف الله در این علم شکل اشکال اساسی نداریم. یک توشید داریم توشید عملی هست عمل ما یک تا قرار دادن خداوند در افعال عباد در افعال بندگان خدا را در افعال خودمون یک تقرار نه در افعال خدا در افعال خودمون عمل هدف از خلقت انسان همین بوده و ما خلقت الجن والانس الا لیاع بدون عبادات اگر عن توحید الوهیت در قرآن بحث شده نتیجه اش مهمه نتیجه چیه چرا توحید الوهیت رو بحث میکنه خداوند خالق رازه میخواد چی رو بگه چی ثابت بکنه میخواد یگتایی خداوند در پرستش رو ثابت بکنه غایه هدف مقصد ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله و ما ارسلنا من که من رسول الا نوش اليه اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ فَعْبُدُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ معناشیه؟ لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ مِنْ دُرُسْتِ بحثی یک تا قرار دادم این هست در تبین که ولی گفتم چون این مسئله یک مسئله بدیهی بوده؟ در خیلی از اقوام پیامبران فرستاده شدن برای تفسیح این قضیه و ما ارسلنا من قبلكم من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون بسم الله والدفرهس الا ما بلط ما بعنوان یک داعیه چون بحث این بوده که ما علم داشته باشیم و بعدا عمل بکنیم و دعوت گرام بشیم دعوت کنیم ما به عنوان که به مردم وظیفه‌مون که به مردم بیاموزیم چونه خدا را بپرسن به حق خداوند بپرسه شاید قبل از این مرحله ما دوچار و معاجه اشخاصی بشیم که خود و خدا را قبول ندارند چطور با چه طریقه منطقی میتونیم با اون شخص ملحد یا اون کمونیست که خدا را قبول نداره بحث بکنیم اثبات وجود خدا بکنیم روش هایی که خداوند در قرآن یاد کرده زیاده یا اینکه یک معادله هست یک معادله را در قرآن یاد میکنه مثلا من یک معادله رو میگم من نمیخوام خیلی وسیع این متن رو شرحش بدیم که از یعنی خیلی وقتمون بگیره که دیگه نتونیم متن رو به زودی تمام بکنیم میخوام یک خلاصه‌ای وجیبی روی متن داشته باشیم نه شرح یعنی خیلی مختصر این معادله که خدا در قرآن یاد میکنه چیه اینه مثلا ام خلقوا من غیر شيء ام هم الخالقون خب مقرره که خداوند خالقه والله خلقكم نه یک بار نه دوبار چندین بار خداوند اثبات میکنه در من خالقم خب ما کاری به اون آیات نداریم چون گفتیم بحث خالقیت خداوند ما شک نداریم بحث مانیم که ما چگونه به طریق نظری با یک معادل بحث بکنیم ناکنیم بحث نظری وقتی که میشه بحث نظری بین اهل سنت و بین متکلمین فرق براه انتقال مقدمه رو من بگم اول طریقه متکلمی بحث حادث و قدیمه خدا قدیمه مخلوقات حادث و حادث بودن مخلوقات دلالت بر قدیم بودن خدا میده هر چیزی که حدوث درش بیاد حادث و محدوثی باشه دلالت بر این میده که خالقی هست چون غیر ممکنه که بشریت از آدم باشه یعنی هیچ کسی نگفته هیچ کسی نمیتونه بگه که انسان با این تدبیر با این خلقت آفرینش از عدم رو وجود کرد اصلا نیست کسی نیمد این حرف نابسن یا حرف بی منطق را بزنه این منطقه هسته هیچ کسی نمیتونه بگه که این نظم و انضباط در آفرینش بدون نازمی باشه بدون آفرینندهی باشه طریق اونها اینه که نا رسول الله، نه صحابه هیچ کدوم از این طریق برای ورود به اسلام استفاده نکردهند. متکلمین میگن باید شما از این طریق وارد اسلام بشید. مکلفی بدون اینکه خدا قدیمه و شما حادثی و این حوادث دلالت بر کی میده؟ اثبات خالق، اثبات قدیم بودن خداوند. این طریق اوناست. طریق خدا من در قرآن با در سنن اینطوریه اولا میانظرن فی ملکوت السماوات والارض نگاه ملکوت خدابند آسمون‌ها و زمین رو نکردن خب چی یعنی ما نگاه نکردیم بچیفه ببریم بحث عظمت خدابنده که ایمان ما قوی‌تر بشه نسبت به خدابند نگاه نکردن نمی‌بینن خدابند با این همه عظمتش فلم ينظر في ينظر فيما ملكت السماوات والارض وما خلق الله من شيء ما هال شيء دي خدا من آفريد نگا نكردن این خدا مقدم است برای کی برای اینکه تو خدا رو تعظیم بکنی و او رو مقدمه علم رب و اون معادله ای که اهل سنت بهش اشاره میکنن در بحث اثبات وجود خدا از طریق ع چون بحث اثبات خدا دو تا از مطرح ترینش اینه که اثبات وجود از طریق عقل یکی از طریق السريق... از طریق خلق اما اثبات وجود خداوند از طریق ع این معادله رو ما همیشه میگیم و گفتیم ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون یا اینکه انسان از عدم باشه بدون اراده ای کسی اینطوری همینطوری بروین و بیان درست بشن از عدم باشه احتمال داره انسان از عدم باشه گفتی اصلا ممکن نیست این زمین در آسمان بیسته دور خودش بچرخه ساعت و ثانیه باشه و کسی هم تدبیرش نکنه اصلا این ممکن نیست من قومن غیرشهی ام هم خالق وای یعنی که شماها خودتون خالق خودتون هستیم انسان ها انسان ها رابطه پدر و مادر هم شما آفریدن میشه شما خالق و خودتون باشین خیر نمیشه چرا چون اگر ما بگیم ما خالق خودمون هستیم آیا قبل از خلقت خودمون اراده داشتیم یا نه من میخوام اینو بلند بکنم باید اراده داشته باشم یا نه من چگونه اراده نداشتم نُت بودم اومدم خودمو خلقت کردم میشه نه پس نمیشه ما خودمون خالق خودمون باشیم نمیشه هم عدم باشیم پس در نتیجه نتیجی گیری این معادله چیه باید خالق باشه حالا اون خالق کیه اون خالق یکتاس حالا اون دیگه معادلات دیگه داره که اینجا نمیتونه به طور موسط صحبتش بکنیم و صحبت به میان میانیم بس اینه که که اثبات خداوند اثبات خالق بودن خداوند در نظر جمهور بشریت اگر بگین بلکه جل اکثر شد این بشر که چپ راست مورد برای کوتن از اون کسی که بودا را می از اون کسی که گاب را می از اون کسی که ایسا را می از اون کسی که امام و امامزادر می از اون کسی که نمیدونم و او او دیگران را می پردته شما بالاخره می بینید این همه مخلوقی که روی زمینه چند درستش اث معروف اثبات میکنن که خالقی نیست انکار میکنن زرود میکنن این که خالقی نیست چند درستش چقدر میبینید چقدر فشریه هستن که خدا را قبول ندارن اگر در جامعه ایران مثلا دردارید چقدر اصل وجود خدا را انکار میکنن اونهایی که هستن انگشت ما یا تعداد خیلی که من بنسبت جمعی که ما داریم درشت زندگی داری میکنیم درست یا نه؟ این منطقی هست ما داری میبینیم دارن ولی اشتباه میپرستن بیش از دو میلیارد نصرانی هست یک میلیارد خوردی که بودایی هست. هست و ادیان دیگه همشون خدا دارن ما که میبینیم خدا دارن کسی میتونه انکار بکنه که بگه که نه اونها خدا را نمیشناسن خدا را قبول ندارن نه خدا را قبول دارن ولی که برای خدا واسطه قرار, قرار میگن ما نعبدهم ایلی کربونا الى الله زلفا در قسمتی از توحید علمی مشکل دارن توحید علمی دو قسمت ربویت اتماسفات بین که خداوند خالق اقرار دارن خداوند چندین جا در قرآن اشاره میکنه کلی من مفیس مراتی ولاد قل من يرزقكم من السمایی والارب اما یملک السمع والافصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فتيقولون الله ان هذا في ضمن ربوبيه خدا واخر مشده در ضمن اسماء بگو رزق روزی کی میرسونه بگو چشم گوش شماها دست کی ہے زنده میکنه و میمیرانه و کی هست که امور شما را تدبیر میکنه دست کی میگن چی فسيقولون الله کی بھی یعنی مشرکین شما که قبول دارید این توشید, توشید رو بیاد اقرار دارید و ایمان دارید به این که خداون خالقه رازقه نه تنها نا اکنید نه و رزقه نه این دوتا مشترکه بشریت قبول دارن مشکلشون کجاست؟ در بحث یا از معصفات خداست؟ اینکه آیا اینجا میشنبه یا نمیشنبه؟ نیاز به واسطه داره یا نداره؟ یا اینکه میگن شفاعهای ما هستن یا اینکه میگن که ما را به خدا نزدیک میکنن یک شبهه ای در از این قبیل دارن که ما دستمون به خدا نمیرسه خدا یکتا را قبول دارن در رت ولی رسیدن به این خدای یکتا و صحبت و سخن گفتن با این یکتا با این مشکل دارن در صفات خدا چون دو مشکل شدن رفتن چی شرک wurden در توشید عملی و توحید عبادت حالا میخوام گفتم هیچ مشاحاتی هیچ به معروف الزامی نیست در این تعریفات اصطلاحی شما میخوای بگید توشید عملی میخوای بگید توحید عبادت میخوای بگید توحید علوهیت مهم اینه که بحش افعال ماست هر تعبیری میخوایی بکن افعال ما نسبت با خداوند ما در اون یکتا باشیم اون کاری که برای خدا انجام میدیم برای بشر انجام ندیم اونطوری که خدا را فریاد میزنیم بشر را فریاد نزنیم مرده را فریاد نز چون چنین شینیننده مطلق اون کسی که مطلقا میشنه به خداوند یک وقتی خلل در از ماستفات اومد خود به خود منجر به چی میشه؟ منجر به شرک در توشید عبادت میشه پس توشید روبیت با این معنا که خداوند خالقه و رازقه یه چیز مشترکی هست بین بشریت به خاطر همین پیامبران خدا نیمدن انرژیشون رو مصرف بکنن برای اثبات خدا و میادن گفتن خدا اگر اینطوریه پس چرا او رو نمیفرستی؟ شما که قبول داری خدا خالق را رضایت میگن نمیبینی این همه عظمت خداوند هن؟ چون ما که می عظمت خدا پس چرا خدا رو را نمیفرستی؟ در سوره اعراف ذک میکنه شعیذ، ذک میکنه صالح، ذک میکنه هود، حرف پیامبر رو ذک میکنه میاد میگه در ادامه شیعه آیه پنجاه به بعد کس های پیامبران در سوره اعراف را بخونی. همشون این شعارشون بوده انه لا اله الا انا فاعبدوا خدا باعث اینه است ما خواسته که غیر از من کسی رو نپرستیم پس انرژیشون تا این نکردن چون زود یاد بوده اگر بدیهی نبود ما میام از طریق عقل یا از طریق خلق خدا ثابت میکنیم چطور از طریق خلق خدا چون اینجا خلقنا و رزقنا بحث خلق چطور خالق ماست مثلا به فرض مثال خداوند در قرآن یاد کرده از اینکه که آس ها و سیارگان یا بباشید ستارگان و سیاره هایی که در آسمان هستن خداوند در قرآن اشاره کرده که جز خودش کسی دیگه اونها را نگرفته اونها را در فضا نگه نداشته که جز خودش ما یونسی که هون الا رحمان. غیرست الله رحمانی که لطفی به ما داره کسی اونها را نگرفته چطور بغیر عمدن ترونها با ستونهایی که شما نمی بینید الان علماء امروزه میرن تحقیق میکنن می بینن که بله این ستونی که خداوند در آن گفته بانوان عمود ازش یاد کرده درسته یک ستونهای نامرئی قابل دیدن نیست یک ستونهای مغناطسی که توسط اشعات خورشید تولید میشه با حرارت و اون مغناطیسی که تولید میشه سبب میشه که زمین در یک فضا در یک حالت معینی بی و دور خودش هم بچرخه الان نه این آید بحث خود همین چرخش زمین که دور خودش و ترک جبات احساب ها جمع میده نگاه کده ها میکنی فکر میکنی جامده. و هیه تمور و مره صحاب مثل عب داره بیچرخه خب کی گفت به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الان امروز ثابت میکنه که زمین 11 کلومه در قدس مجرقه سرعت متوسط عبرم در آسمان 11 کلومه این دقیقت در آفلی نشد که در قرآن و علم امروزم ثابت میکنه کی هست که 1400 صدقات که عدوات امروزی نبوده کی هست که به رسول صل الله صلی اللہ علیہ وسلم گفت یا بحث نطفه جنین که چمروحلی میگم ادوات امروزی داشتن که بخوان سونوگرافی داشتن که بدونن که جنین در چه مراحلی در چکه مادر طی میکنه از موقع و از مخلقه و از اون مراحلی که در قرآن یاد شده معلقه هست مدغه هست طب این مراحلی که امروزی هم ثابت میکنه اول یک خونلخته هست بعد اون خونلخته میشه گوش بعد اون گوش میشه استخوان، سپس اون استخوان، سپس اون استقان سپس سپس بر اون استخان گوش میان این مرحله با این دقت کی فهمیده در اون دوران که این جنی استخان بوده و بعد گوش بهش اومده کدوم یک از اون اتباه از اون پزشکان به این چنین مسئله دقیقه پی بردن که انسان بعد از این که خونه لخته و گوش میشه تبدیل به استخان میشه کی گفته به رسول الله صلی اللہ علیه در قرآن کی ابلاغ کرده کی برشه کرده چی از این دقیقت آفرینش خبر داده؟ جز خداوند خاله؟ پس خداوند از این طریقی علم علم کونی که به ما داده و در قرآن به خبر داده اثبات یکتایی خودش میکنه در چی؟ در آفرینشش، در پروردگاریش اونه که این مخلوقات را با دقت خلقه کرده و رزقنه، رزق, رزق و روزی هم دست خدابنده و خداوند چندین جا در قرآن تکرار میکنه که من رزق روزی رسانه این الله هو رزاق المتين القوة المتین من رزاق و صحب قوة متین محکمی هستن رزق روزی دهنده خدا و مشرکینم به این قضیه اقرار داشته شک نکنید خداوند من خالقه شک نکنید خداوند رزق روزی رسانه و چون این مسئله دار در شک ندارید بدونید کچی ولم یترکن حمله بدون کشمار روحام نکرده پدوان چند تا پیامبر فرستاده برای ماها؟ سه هزار پیامبر. چیزی که در حدیث اومده بلک ما حدیث هم بخوام قبول نکنیم. ببینیم چقدر های پیامبران از وقتی که آدم خلق شده تا وقتی که رسول الله مبعوث شده چقدر پیامبران فرستاده شده؟ پی در پی. ابراهیم، اسحاق، اسحاق یه جا، اسماعیل جای دیگر. بعد از اسحاق یعقوب، بعد از یعقوب یوسف پیدر پیامبر میفرسته خداوند خدا من. بعد انسان میاد، آد بعد حاروم میاد، بعد ایشع میاد، به ترتیب بعد کالود داود سلیمان به ترتیب خداوند در هر بروح از زمانی پیانبری گذاشته به این قصه ها خدا مفصل در قرآن یاد کرده ولم یترکن حمله و این نسیه هست که خدا من در قرآن هست. یاد می درش که من شما رو رو نکردم نسر هست درش که خدا در قرآن اشاره میکنه ای يحسب الانسان ان يترك سدى شوف كده تامیتوری بیهوده بدون علت خلقتشون ما اونجا اشاره کرد ما خلق الجن والانس الا ليعبدون شالیکتیه این مفهومش صریح نیست که ما جن و انس خلق خدا برای اخرینش برای بحث عبادت و فرستش با این آیه در اون آیه رو بخوام تعبیر بکنیم بگیم اون دلالت صریح نیست با این يترك السوداء. يكون ننسف من من الومناات آخر آيات همینطوری ف کرده کللق شدی خ برای چه خلق شدین؟ برای عب تو یک تاپرسسی ا حاصل تو انما خلقنا تو معته؟ آای دیگر او ح تو انما خلقنا و مععبته چه کرد اسباب بد بیوده همینطوری از بیستوری شما قلق کردیم بازی هستی بازی چه هستی همینطوری راهاتون کردین؟ رهان شدیم، پیامبران هم فرستاده شده که ما را انذار بدهند که این آیه را مؤلف استدلال بهش میکنه سرودی الله جل شانه ان ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسول پیامبران فرستادیم همونجوری امتهای پیشین مثل فرعون خداستر شده خدای من مرا رها نکرده آیا حساب کردید ان ما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون فكذبا بثلثی ما باظنی کردید فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو فتعظلم فوق المنزه اگر شما کوپ بوردید شرف بوردید از من فاصله بگیری دنبال من نباشید خداوند نیازی به شما نداره شما حس کنید نیازمند الله هستید هر کاری نمیخواید بکنید شما محتاج الله هستید و خدابند این جس را به عنوان یک امانت در خدمت شما گذاشته که قدرش رو بدونید ولم یترکنه پس حمله ولم یترکنه حمله ما را بیهوده روانه کرده ما را برای چی خلقت کرده برای عبادت فرستش برای قدشناسی قدرش رو بدونید و روز قیامت میاد که خداوند ناسقاسی ما را سرزنش بر ما میکنه سرکفت من میزنه و ما قدر الله حق قدره سرکفته برای ما قدر خدا را ندونستن اون دیگه چی ای خالقه این نعمت را در دست ما قرار داده قدرش بندگان ندونستن محضیتش کردن اطاعت نکردند. نکردن سر به سجدش نگذاشتن سر به فروتنی نیازمندیش احساس حقارات در مقابل الله نکرده این احساس در وجودشون کبر کبرومه مثل ابلیس تکبرومه فاصله گرفتن ندونید که محتاج الله هست ولم یترکن هملا فسمر بی هوده خلقت نکرده بل ارسل ایلینا رسولا بخاطر اون هدفن بخاطر این نعمت تمام بشه بخاطر این که فرداد نزی قیامت عذری نداشته باشیم بهانهی نداشته باشیم خدا پیامبرانم برای ما فرستاده و ما کنم معذبین حتی نبعث فسوره تا پیامبرین نفرستیم عذابی نمیدیم چه در دنیا چه در آخرت اتمام حجت این خدا میخواد بگه من اتمام حجتم کردم این قرآن این سنت قدرشو بدونید بهش عمل بکنید. علم و عمل لازمه علم عمل اون مقدمه را گفت چون اینجا همش بحثای علمیه میخواد برسونه لازمه اون علم و این علمی که الان دارید میخونید درباره خودمان لازمهش عمل این دوتا از هم منفک نمیشن جدا نمیشن چرا؟ چون هدف از خلقتتون این بوده به هدف از شدن پیانبرانم همین بوده و فی کل في كل امت رسولا الله. هدف عمل بوده و پرستش فمن اطاعه ومن عصاه دخل النار كفي إتعاتك أزون رسولك الثلاثة شدة وارد به الشبيشة إتعاتك وارد به الشبيشة ومن عصاه دخل النار إن حقش إنك الجهنمي بشر بإن نسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كختام البحث مشابه من هذا demi فلمانها معتقد بخاري وماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمان كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبا همه وارد بهش میشن کسی الا کسی که ایبابو کنه خودش نخواهت گفتن یا رسول الله و من یا رسول الله چی نمیخواد که وارد بهش بشه قال من اطاعني دخل الجنه و من عصاني دخل النار کسی از من اطاعت کرد پاداشش بهشته اطاعت نکرد عصیان کرد اون جا شفیعی جو ده جهنمه آیات که مزمونش إن قضية وشيء إن دطبان غيرت إن حديثا زيادة ومن يطع الله ورسوله فأولاك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتخف أولئك هم الفائزون ويقول الشيخ هذا بان فاض شويم ده واما أدر عسيان ومن يعصر الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها و له عذاب مهين عذاب مهين اونجا فادزه وزن عظیما اینجا عذاب مهین اگر عصیان کرد در مقابل اطاعت از پیامبران خدا این قد پاداش این علم که ما باید بیاموزیم اگر دنبالش بودیم راه رو روش مسلک پیامبران رو آموختیم دنبال حدی روش اونها بودیم منهجش اونها بودیم پاداشمون فادزه وزن عظیماست راست اما اگر عصیان کردیم نرفت دنبالش يا خاتمه سورانا عظيما هي يا, يا عذاب مهين, مهين يا ومن يعصي الله ورسوله فقد ضلل غلالا مبين غمراهي بسیار آشکاری داشته و جای دیگر خداوند میفرماید و من الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا درس است که یا شهر آیا درباره کفار کفاره که مطلقا رسالت رسول الله دارد کردن بلی اون کسی که اسیان میکنه ترپیشی میکنه از دستورات رسول الله صلی مرتکب گناه میشه باید بدونه که عذاب روز آخرت هست و حساب کتابی هست و عذاب میبینه و کلام رسول الله و کلام الله در این قرآن حقه پس این وزیفه ما هست در این بند که معلیب با این فیغه اومد به گفت. پس بحث امروزمون درباره این بوده که خداوند بدونیم خداوند خالقه خداوند رازقه و هدف از خلقت ما اینه که حق خدا را به جا بیاریم هدف این بوده که سر به سجدشت بزنیم سر به ذلت بزنیم احساس حقارت احساس نیازمندی بهش بکنیم و او را بپرستیم إن هدفه من نتائجه. وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل <سؤال> محمد.